باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك انو سيندا كتابي مجاور من جمر نسيني حجر الكرياني علي مرکردنی دلیر سلین گوگرانی عزیز شیدانی دنیای اکتب سلاوتان لیبه خوشحالین امشویش لبشی هفته و نوی خوند نوی اکتب چشتی مجیوری مکریانی هاتی نوالاتن Fermon Haouriben Lagelman Hajar Mokriani له یارانوی به سرحت ییانی خو نو سینوی سرگذشتکن یانی ده بر دوامو لوی دا کلګل ستاف نو سین لروزنامه خبر ده کاری کردو با مند نو سی لمقال کی خبر ده نو سی بو دروکان دولت وک او وای حسن حسین دوک سی معاويه بن علیه بغدا مقال حروف چینی کراوه نمونه کی لدراوه سفر دی تویا سفر کشیابو با سعید هاولمنی وتبوک سعیدش مسیحیه ساید، آم غلطت شیا، توماس شهید نازانی، منکشی آم دزانم، حسن حسین کر علیب و دستیزد شهید کراون. بیا نه، بیا نه بیگوره. ساید نشار گوری درابو كديم جاور سفر حاليكو لسره حروف چيني غلط بكوا. دوسر عربي اسيري زوزي كن بوهينان كه خدمتی بنكان پيابكن. يكن سيد علي خلكي حلو ماسي گربو شي عبو. یکیان حمد لای دیوانی، سنی بو و فلاحیش بو. که زرد و ضعیف و لاواز لوتت گرتبان گیانیان درده چو. زورزو لای ما قلوبونه او زور وکیف هاتن. تلیسی کی پرمتوتن دکل لای حمد دانه هر دعای بخیری دکرد دیگود آی تیر توتن بوم خوار راوستاوت کا زور من خوش دویستن. حمد زور گیر جوکبو دو استیکان چای به نای بسلامت ندگیشتن وتمان توک ورزیر بوی بیستان من بوبکا باور که بیستان اکی نمونهی بو ساز کردین روز یک چوبوین راو ماسی زور من ماسی گرد بلام چکولا بون برجان منن یما دگر درو بجریب کن سید علی که کن ماسی گرد بو قاقا پی من پیدکنی که ایو فیر نبون ماسی خون دیر بو اویش هنریک بو هر کلکی ماسی گردو بددان داید مالی قد درو یکی دگروی نجیره بلام استاش فیری حمد کهیج سید علی چندن کی کوردی فیربوبو نردبوم گلپار یک بگری هرای دکرد ما مستحشر او شتا او شتا دوای پکات نو گفتو ود گل بزازو عبدالرحمن عارف اسیرکان نردرا نو من بیان یک لسربانی گوندی بوم ام دوانهات نخو حافظ هر دکان زرب کلدرییان کلیمن جودب نو و د ان گوت بریاد ده سالتر اسیر بردستی یواباین عبدالحسین فیلی پیری کی کورتبالی لاوازی زور زيتو زیرک لبغداد نزدک مدرسہ مستنصری قدیم دکان کی خیاطی جلو فرش فروشی هبو کردکی زور مخلص بو بتایبتی دگل احمد توفیق من تاله بغدابو زور سازو تیار بو بتومت تیروری بدرالدین علی استانداری حولیر اوشتیو درابو پاش حبسو جزره بدانی زور بردرابو هاتو نو شرحو ماوی خزور للای سلیمانی کراب و امینداري دغلودانو دانو پیش هاتي پيشمرګه در بجارک به سفر یک نردرابو لمبیندا د زوريان لیکرډبو هاته ليو ژکب دادی خوی خوې سیاسی مکتب سياسي مجید منداله کي د قلبو وتی او مندالو زوري جوان و برچاوه باو کي بميس پردو و کاګداري بم منش دلم هر تمنيده حجاديان با لای توب یو لچنګ پیاوی خراب و بی اخلاق بی پاريزه پازده شویک حسین میوان بو شوانه باسی بو کردم کوردی یمشی باش نازنی که باسی یکی کی دزی بیا آکاری بکرد با دیگو باله ماموستا ام پیاره خراوه حیل لعنت له قبری بم دم قوت باله فرمایشتکات راست او دم جنگی روان بو مجید د پیش مرګ کانت چوبونه چی خبر هات مجید دلیل خوب وته خوی بوبرن په ستزمنه کومندال شرستاني بو دیوې ریواز به پول لکيو زورا به خوي هندي خورد بو بورا بووه روز یک بدستي گل د شوین ملب کین زور دور لپشتي غوند مندالي جوهر هيرانیم کیتن لبن برده کی گور دابون موتم کاک جوهر بنو برده هلاکه اگر خوانه کا تیار لیبدا هر بتلی شبرد منداله کان تبرکاون با لنا هوا میرگل بین او داره گوریه بین که اگر بوانبا وک میرگ کهوی نه تقیده و بشتاقی پریشکی زور لیه بلاو نه بین نویه جیشوان کلمه لگ رای نوا همو مالی بارین لینه او روبا کیوستان وتم و تم با شو با شویه و نو تو ام شو بوانبا ران تندکن و نم خوا روی دروزون و زمن هلا رشکا لگوندی گوندی گیان جا یکم با پلی دایکی سرگورد یوسف میران بو که بنکی کراکی لیمنزیکو لو بری دولک بو پلی یعنی پوری اوجنا لیمرون لهمو شیخ و مشایخی گورش سالحترو لهمو کس بروحمترو لهمو مردازایان مرد تر بو خالخم بو جاریک لحولیر دکتوریک روژک سری چوار نخوشان دادا لهموان پلی لبن سری نخوش دبینی کمیوی بو هیناو دلداری دادا توا دکتور گوشیه که فریده، دا داله پلا، اگر تو دکتوری من چکارم؟ وقت بله منی بقد تاقانکی خوی خوش دویست، هر چشتی کی خوشی لینه با دینار د دوام، کده چو ممال کی نوستن را دمگو پلا اوچیا، دیگود قلندر، دت ناسم، هر نانت خوارد خو بلات تا دباتوا، نان بخو بنو، پروج پېښنۍ ورله مالې پلبو کای یوسفی کورله مالنه بو تيارهت پېښمرګان کجګیان روتنو پېښمالانبو حالاتن خوب شرنه و پله در پرې هیدا وشین تفنګکانو بدن بمن یو بو پیاو نابن له خجلتین گرانه وکړ دې کم پېښمرګه بو نایو پله نه زانیو به حرمت تنانت کورکه خوشی وکه مو پېښمرګ یک پیداوت من که همیشو ایستاش لخوششتن بسابونو اوی گرم زورتم بلم روژیک پلا که دعوتی کرده بوم هلی پیچام او گرم کرده بی خود بشوی چاری نچار پاش قی روحره زور چومه جوری تنکه اوک لسر آگرو برده کی بو شور کلی بو پیم لبردکه نا تنکه او ورگرا نا آگر باوشکی جلم دبر کرده و حات مووتم باش خوششت هر دیگود با قستان واد کرده هباس ما مندغه او شیخ لطیف شیخ محمود هاتنه لوجو نیواني جواده شوچو شوچوملاین هباسا غاوتی د به دعوت یکمان بکی دو گیسکم کریو دعوتوم کردن مجلس کی گوربو خسا کرا او بلې قربانته و ترا سرم برده بنوی هباسا غ وتم کاکه ایوا پیوا گورکان له نو رایتو شهر دستان د هر قصده هاویل صعبت زور رکن اوانه زور زی رکن هر لترسان بلې قربانتن بودالن کدیار نبون لیستان لخوار دکن اوو به به افروده نزنن توزع اجتنه خواب سعبت کم بکن هباس اغلب یکنینشین بوعو تی یقین راز دکی بلامشکورشی خل تیف لمن سعبتی تراو سعبتی زیادتر دکا لوتاد دکل ایران نیوان خوشبو بو حالیه می ایران یکن کوتبو خطر و دولت دعای ک ایمت هسلیم کن و حیبیش حا شید ک آوان لای من نین خلاصه وقت چاوشه در لیمان دگران به طیبتی دوای احمد توفیقیان لیاده کردن که رئیس حزب دیموکراتی کردوستان ایرانو همیشه پیاش مرگی بردست اودسن ایرانو تقل سربازو پولیس اکنو و لی ایران دکن. دبیر هرب منده نوا که یک جه زوریان زوری هی نابو. ناچار احمدیان برای بر کرد بو سنوری ترکیه لگوندی کانی ماسی لبرواری بالاب مینتو لسر سنور ای که وگدالین نه شیش و نه احمد هرچن بو دور خست نویه لچالاکی و حزبیاتی در جی ایرانی کوردستان کری کردوستان دکود نه چر ملی داو دگل چن حوالی که ایرانی باری کردو لیم دور کود احمد براستی شیری مصری بود دکالا ندوستا بلام چه دکی؟ اگر دیکیش دور که اوت بی نوا، نامید دوستان من بیهتر دنار دو لبرنبرد در دادلیکانی دل داریم دادا و کس سرپک، بلکه او خواه، امگیروگر تا بسرپش او با خوشی توشی یکتر بی نوا. لوسنوردورش کداستی لایران کوتأکرابو لکاروباری به فایده نوستابو. سرارای درز به پیش وتنو تنو، سواد فیر کردنیان، دو باقی به جمع و لجاشتانی زیندو کرد بواوا راستی بغداری که زور به سلیقش بو کمن نمدازانی، چنجارک سیاو میوی باقی بو نردم دبو هربیه سیریان کړ د حسابلاغی بناوی صدیق انجيري ماوي ګولتارانه او حاتبو دربند لبالکاتي حواله جار له شارق الاظم دیت دوایله دربند چن جاریکم دیت تعریف خويندواري او زنوي اند کړ پیاوي کي هيديو هيمنو له لو سردمانه ده ک احمد د خراب او بوسنوري ترکیاو اعمال ليوجبوین روجک دغل سعید ناوي ک بچاوي بوونه ميواني پازده روز مانه و روشان خوی و سعید دچونه دا داریده با جمینی و رو شودهت نو تواو حوگری صدیق بو بوین چند جارگ لی مکتب سیاسی و که زور من لی نزیگ بو خبریانده نی که ایرانی نوی اویان پرسی و بالو زیک نمینه سامی و من حاشا من کرده جو و جواب من ندانه و روش یک دبوی دو روشنا منو سو فیلم برداری المانی بین لامن لیو جا جاری کن با صدیقیان وید امر که همر راجل و د انشن چون که نه زانین کې د گل او آلمانیا نه دی لوانی جاسوسي ایراني رګل کوتبه صدیق لو حسین راحت بو وتی د یاره د رام نگرن اتر به خو حافظی کردن د سعید کیر رویشتن چوبونه جیګی رادیو لګردیم بو بو ن میوانی حسامی وته بو هی کم هه 20 دروس کین صدیق وته بو د 13 د چمه کوکی دروس د ایتر او روی نبو نهاتاو بیسروشوین بو کس خبری نزانی صدیق زور جار سفری دکرد و به حوالان خوی نده گود بو فوی اچم همو کسی کدی ناسی لایوا بو اقل بریویش و تا ایرانو تران بو لی حوالان تو دی خوی پشماوی که زور باو که صدیق لقصره هتلای ملا مصطفى باسی کراکی کرد کلم نوش شرطو گم کرعوا برزانی فرموی هیچ وقت کوری تو هم نا و ناش زنم که دالی، تاقیق دکم، دا تواش بپرسه بالکشتی که لچرانوسی بزانی، استاش کس نیزانی، صدیق انجیری چی بسرهاد؟ لپاش رویشتن احمد توفیق بسنوری ترکیه سولیمان معینی خوی کرده جنشینی لحزب دیموکراتی کردستانی ایران، رنگ اوانی زوری دگل جیعون بناسن، دام بیسته وک معینی او ها ورانی پیاش مرګیداس نو ایرانو چالاکی دنوینن معینی برای کی لخوی بچوکتری هبو بناوی عبد الله کوری پسند ورند او بو براستی زور پیوی کی بقیمت بو کبه ده خو لنیو گورخان دغل مینشم ک اویش عالم حق شهید کرا بن کې معینیو پیاش مرګی حوالی لا آشان هاته بونا دولار رقه. یک لوانه هوالی معینی و شریف زاده بو کراکی حقوقی بناوی حمدامین سیراجی بو که زور کومونیسته که توده دعا تشه بو. پیوکی زور زیرکو قصه زانو لبلبانو زمان لوز بو. بداخو هرچند داخو هرچندی کردم نم توانی نه خوشم بویه. نازانم بوچی. من احمق بومو دوی هستی احمقانی خوم کوتوم. دنا هرچی دم دی تاریفیه کرد. یان یعنی باید نمویم لیه کرد که من کمونیستیت تکی بو موا که او بروی پی بو ملا اوارناو یکم لو برادرانه دید، زورم کهیف گردی، بیری یک جار تیج بو، زور به شعری منو یک جار زور شعری کردی لبر بو که قصه دکر دلسوازی بو کورد و کوردستان لقصه کانی دباری و زور یانکر لدل گوگرده گرد گرت. لقلاتی بالایان بوین منتقی مقاضی که لپی شجده دمناسیو برادر بوین هد و دته م ولای محابات ها ولان د بینم کاری کتنیه رامسپیری غتم خمیر ددانیکو فرچیک مببنه تا خوې خلاص کړه کوم بو باسي سیاست دغل ناکم جره به سفر چوبو محاوله میوانی مال شیخ مصطفی کور شیخ عبید الله بو ک اوساله هولربو سالاری حیدر یو منتقم وتم بو هات اوتین بو سیاحت روجی گوتین منتقم جیراو اوتین خبر بشورج دراو ک منتقم دگل کور شیخ عبید الله چوتم مرکزی فرمانده سپای عراق الهولر کله نقطه س نوری شورج لیان پرسیوا او تویه نوم عبد الله الناسیو نه ک منتقيمه سالار حیدریکات بو زانی بو منتقم جیراو چوبو گلاله او تبو منج بگرن ک دگل منتقم لهولر کارمن بتونی که تو اگاد لکاری منتقم نبوه بیستموکه منتقم دراو تو به ایرانو لوی حبس کراوه روز یک لگلالابون پیرژنیک خاتلم گریه وتی کورکم سید گيراو نصر اوک دلن ایرانی تکان بوکرد بریاندا سید چوبو چنک زکیرا گلخوی خسته بو وتی بو مامهاجر دلبس نه چتایل عجمان کا چند تا قایکیان کرده و پلیسیکیان کوشت بو،, بو. حالات بو نو و قندیل که بهیت جور آگاش ملی نبو. پی رپی یک بناوی حسن حوتوان لاجانی، زور سال بو پیش مرگ بو. دعیواری ده هاتلام که عمری کری تازه لایه کو، دگل و کسی جرایانه، زورم بزیپی ده هاتو. چو متکای او کر، شو بریان دبو و تبویان حالات عمر کلم مردن رزگرم کرده بو، زور جرده هاتلامو دردی دلی خوید جاریک دگل فایق معینی چونه تسر رگه اینوان سردشت و خانی و تی کاروانی که کامیونی سربازان که چارده کامیونی برک راو بو هر یکی سیان چوار پاسبانی دسر بو ببرده ما نهاتن ایمال نو درستانی که چوغور در دوروری رگه من گرته بو دمان توانی بطنیه دست یک بیان کجین و کاروان رود کین که فایق کسر کرده من بو فرمانی آگر کرده نده همش پیرمان و کک فایق لو چاکتر قط حل نکوي او شپوتین نخیر رازی نمتقب کن خطر جا تو اگر کاک احمد بوایا د سره پور و چور نرمود چونه د وی تا خطر نه به بج میشتو هتو مو کرکتری امام حسنه ابراهيم لپشلم جران لاجان کوجرا او عمرش ل شر دول خدراوی دیموکراسی ایران ک دغل دولته Cruise عزیزان و خوشویستان، لیر دابم شویا دین کتایی بشی هفته و نوی خویندنوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی تاشوی کترو لخویندنوی بشی کتری ام کتب دا پیتندگی نوا شو تن آرامو شادومانو بختور بجین.